شامس کاروانسرای نزدیک سمرقند شبان 639 در حجره طبقه دوم کاروانسرا یک دوجین مسافر بود در میان این آدمهای خسته که همگی بار تنهایی خود را مثل سنگ آسیا بر دوش می‌کشیدند و به رؤیاهایشان پناه برده بودند توشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن میداد روی تشک دراز کشیدم و به وقایع آن روز یکی یکی فکر کردم آیا با آنکه در حال شهود بودم به اشارتی الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش را ندانسته باشم روزم را از آغاز تا پایان با این دید از پیش چشم گذراندم. مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم. از کودکی به دیدن عالم دیگر میروم. چشف می کنم. از غیب صداهایی می شنوم. با پروردگار حرف میزنم. او هم به من جواب میدهد. تعریف می کند توضیح میدهد. بعضی روزها به قدر پچپچی پش سبک میشوم و به طبقه هفتم عرش میروم. بعد سنگین میشوم و به عمیق ترین گودال های میافتم. به درون خاکی می لغزم که صخره بزرگ را در خود مخفی کرده و درختان سر و سنوبر و بلوط در آن ریشه دوانده. گاه آنجا و گاه اینجایم، بعضی وقتها اشتهایم از بیخوبن می برد، چندین روز حتی یک لقم غذا از گلویم پایین نمی رود، حرف زدن را فراموش می کنم، کلمه ها از ذهنم پاک می شود، هیچ کدام اینها نمی ترساندم اما میدانم که به نظر دیگران عجیب میرسد. گذشت زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالتهای وجد صحبت کرد. نمیدانم چرا آدمی زاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمیکند و دیش را بگوید. خودم چند بار این قاعده ناپذیر را آزمودم. اولین کسی که رفته آمدم به عالم دیگر در نظرش باور نکردنی آمد و از کشفهایم لرزه بر اندامش افتاد، پدر خودم بود. تقریبا ده ساله بودم. آن وقتها فرشته نگهبانم را دیگر می شود گفت هر روز می دیدم. آنقدر هم ساده بودم که فکر می کردم چیزهایی را که من می بینم همه می بینند پدرم میخواست مثل خودش نجار بشوم روزی که ساختن صندوق با چوب صدر را یادم میداد نتوانستم جلو دهانم را بگیرم و برایش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم پدرم گفت: ببین چه می گویم قوه تخیلت زیادی کار می کند انگا. بهتر است این چرندیات را به کس دیگری نگویی وگرنه دوباره باعث اذیت مردم می شوی. چند روز قبل چندتا از همسایه ها آمده بودند و از دست من به پدر و مادرم شکایت کرده بودند. می گفتند با رفتارهای عجیب و غریبم بچه هایشان را می ترسانم. پدرم گفت ببین پسرم از قدیم گفتند تره به تخمش می رود. هر بچی به پدر و مادرش می رود. فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه، چرا قبول نمی کنی که آدمی معمولی مثل ما هستی؟ در آن لحظه بود که فهمیدم با آنکه پدر و مادرم را دوست دارم، حتی گمان می کردم به محبتشان محتاجم، هر دو در نظرم آدمهایی بیگانه اند. پدر عزیزم، بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرانش بیرون آمده. اگر دلت میخواهد من را جوجه اردکی فرض کن که مرغ ها بزرگش می کند. مطمئن باش که عمرم را در مرغدانی نخواهم گذرام. در آبی که از وارد شدن به آن می ترسید من جان می گیرم. چون برخلاف شما می توانم شنا کنم. مسکن من دریاهاست: اگر با منید شما هم به دریا آیید. وگر ندخالت نکنید و در لانهتان بمانید. چشمهای پدرم ابتدا از حیرت گرد شد. بعد ریس شد و بیحالت. با صدایی قاطع گفت امروز که با پدر خودت اینطور حرف میزنی معلوم نیست فردا که بزرگ شوی با دشمنانت چطور حرف بزنی. برخلاف انتظار پدر و مادرم بزرگتر که شدم کشفهایم از میان نرفت بلکه بیشتر و جذابتر شد. بزرگترهایم عصبی می میدانستم. از اینکه ناراحتشان بکنم احساس گناه میکردم. اما نمیدانستم کشف در عالم دیگر را چطور متوقف بکنم. البته از شما چه پنهان اگر هم میدانستم نمیخواستم متوقفش کنم. چندی بعد خانه را ترک کردم و هیچگاه؟ بر نگشتم. زن حضرت لوت همین که سر برگردانده بود و به شهری که ترکش میکرد نگاه کرده بود به مجسمه نمکی تبدیل شده بود منم ما حتی یک بار سر بر و به تبریز نگاه نکردم از آن روز تا به امروز اسم شهر زادگاهم هم همچون کلمه تلخ در قلبم جای دارد. چنان ظریف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطره شبنم روی زبانم جاری می شود. هر وقت در فکر تبریزم سرایحه قوی وجودم را در بر میگیرد. بوی تاششه چوب نان گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نرم. از آن زمان به بعد در ویشی سرگردانم، در تبعید ابدی روی زمین. روی سنگی که بالش کردم دو بار سرم را نگذاشتم. از یک ظرف دو بار قضا نخوردم. از زیر عبایم هر روز منظرهای متفاوت تماشا کردم. گرستنه که میمانم با تعبیر خواب دو سه درهم به دست می آورم. آنچه به دست آوردم بین محتاج ها تقسیم می کنم. به این ترتیب هفت اقلیم را از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب می گردم و در کوه و صحرا برای حق به دنبال حق می گردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیرزد همینطور دانشی که به دانستنش بیرزد بی ریشهم بی وطن. از هنگامی که خود را در او فنا کردم از وقتی پیش از مرگ مرده‌ام بی آغاز و بی پایانم نه پشمرده‌ام نه بیچاره نه محتاج نه به کسی امر میکنم اما مرا برگ خشکی بازیچه دست باد نپندارید از آن درویش ها نیستم که دهان دارند زبان نه من آن طوفانم که در جهتی میوزد که خود بخواهد در سیاحت هایم از انواع راه‌های صعب العبور گذشتم از جاده های تجاری که همه میشناسند، از های فراموش شده نیز از سواحل دریای سیاه تا دیار عجم از صحراهای عربستان تا جنگل‌های انبوه از چمنزارها تا بیابانها همه جا را گشتم در هزار و یک کاروان سرا منزل کردم در کتابخانه‌ها با دانشمندان مشورت کردم از آعرفها پرسیدم با دیوانه ها صحبت کردم. جوابی را که نمی بدهند در سکوتشان پیدا کردم. معبدها و مقه ها و مقبر ها و, ها و ها را گشتم. در قارها با چل نشینها غرق تفکر شدم با درویشها و شیخها ذکر گفتم در محتاب با شمنها رقصیدم از نقالها داستانها شنیدم از هر اعتقادی از هر مشربی آدمی شناختم، کسی را بر کسی برتری ندادم به آفریده به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم بدبخت‌ها را دیدم احمقها را هم هم کرامات را می‌دانم هم معجزات را روستاهایی دیدم ویران از فقر مزرعه‌هایی سوخته و سیاه شده رودهایی که خون در آن جاری بوده قصبههایی غارت شده که تمام مردان و پسران بالای هفت سالش را از دم تیغ گذرانده بودند والاترین و پسترین اعمال بشری را شاهد بودم چنان شده که سال هیچ چیز شگفت زدم نمی کند شنیدم و اطاعت کردم پس از هر تحلکه و تجربهی به قوائدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته قاعدهی جدید افسودم بر اینها نامی گذاشتم چهل قاعدهی صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند این قوائد در نظر من به قدر قوانین طبیعت جهان شمول و به اندازه آنها اساسی هند. سالهای آزگار وقتم صرف این شد که این چهل قاعده را از اول تا آخر تکمیل کنم. بیشترشان را بارها و بارها پاک کردم و از نو نوشتم. الان دیگر نه حرفی مانده که به آنها اضافه کنم، نه کلمه جدیدی. دیگر چون هر چهل قاعده تمام شده، در آخرین فصل زندگیم هستم. تمام پیشگوییهایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از مرگ نمیترسم چون مرگ را پایان نمیدانم. علاوه بر این معتقدم که مرگ هرکس رنگ خودش را دارد. چیزی که به فکر وامی داردم مرگ بدون میراث است. دیگر این همه کلمه در سینه هم نمی نمی‌گنجد. مسئله ها و حکایت فراوان در درونم منتظر بازگو شدن است. در آرزوی آنم که تمام علمم را هر چیزی را که می‌دانم و یاد گرفتم مثل دانه مروارید کف دستم بگیرم و به یک نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی مرشدم نه به دنبال مرید انسانی که پیش می گردم آینه روحم است جان جانان من همراز و همدل من قاعده دوم پیمودن راه حق کار دل است نه کار عقل راه همیشه دلت باشد نه سری که بالای شانهایت است از کسانی باش که به نفس خود آگاهند نه از کسانی که نفس خود را نادیده می‌گیرند. در اتاق مرتوب و تاریک پچ پچه کنان گفتم یارب، عمرم در گشت و گذار این عالم در تعقیب رد پای تو گذشت. هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبین است و لایق آن که خلیفه تو روی زمین باشد نه با های برج آج نشین مدرسه نشین و شاههای تخت نشین بلکه با رانده شده ها و دلشکسته ها رفاقت کردم تو را شکر میگویم که شیطانم را گام به گام به مسلمانی درآوردم. الان دیگر لبریز شدم کم مانده به جوش و خروش آیم می خواهم علمی را که در سایه عنایتت نصیبم کرده ای به شخص صحیح تسلیم کنم فرصت بده پیدایش کنم بعد هر حکمی خواستی دربارم بده بدان که من به آن حکم راضیم. چون من در هر وضع و از تو راضیم. در آن لحظه نوری کمسو همانند آب در اتاق جاری شد. به چشم خود دیدم چهره‌ی کسانی که بر تشکها خوابیده بودند به آبی میزد. دیگر اتاق بوی تازگی میداد، پر از زندگی بود. انگار همه پنجره ها را تا آخر باز کرده بودند. و نسیمی که یک باره در اتاق وزیدن گرفته بود با خود رایهه گلهای یاس و یاسمن و ارقوان باقهای دور را می‌آورد. آورد در گوشم نواخته شد همانند ترنمی الهی شیرین تر از اصل سبکتر از پر صدایی گفت ای شمس تبریزی مجده بده، دعاهایت مستجاب شد، شو به بغداد می میشناختمش می شناختمش. فرشته نگهبان دوران کودکیم بود، پرسیدم در بغداد چه چی چیزی در انتظارم است. گفت، دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیا به طور رفیقی داده خواهد شد. به بغداد که رسیدی، فردی را می یابی که مسیر صحیح را نشانت میدهد نزد او میمانی و منتظر لحظه‌ای می شوی که باید دوباره به راه بیفتی. باید صبور باشی. در چشمانم اشک سپاس حلقه زد. دیگر میدانستم. مردی را که در عالم دیگر می بینم کسی نیست جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشتمان. پیدایش که بکنم می فهمم چرا آن چشمهای اصلی آنطور قمگینانه می نگریستم. این را نیز می فهمم که نیمه شبی در موسم خزان چطور کشته می شدم.